بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين واله وصحبه اجمعين اما بعد ما درمون براهين و ادله ای که ما رو به خداوند متعال میرسونه و نشانگر و نمایانگر وجود خداوند تصر رو داشتیم بحث حس و احساس و بحث ادله عقلی و ادله نقلی از قران و سنت و اقوال نمیدونم دونم مذاهب یا اقوال فیلسیفان قدیم و جدید اعترافاتی که همه داشتن از عقل ادیان پیشین پیشین یا امت های پیشین و همچنین امت خودمون اینها همه داشتیم ما می رسیم به بحث فترت آخرین مبحث بحث عدله پی بردن به وجود الله جل شانه فترت ما قبل از این که بارد مبحث فترت بشیم به علیت این که عمق این مطلب خیلی زیاده و اختلافات درش خیلی شدیده ما باید اول باید از لحاظ لغوی و اصطلاحی کلمه فترت رو موشکافی بکنیم اقوال علما عدله و, عدل و نبی آیاتی که در قرآن اومده باید مشکافی بکنیم بیاییم ببینیم که به چه معانی در قرآن و سنت اومده در اشعار عرب در لغت عربی علمات چی گفتند پیرامون بحث فترت؟ فترت، اصل وزن فترت بر وزن ساله و حروف اصلی این کلمه تا حرفه ف و طا و را فطرا و خود کلمه فطرا بر چار تا معنی اصلی در لغت عربی میچرخه که در قرآنم اومده بر حرف چار معنی او بلس معنى من هذه المعنى اللغة في القرآن ومدر بغشي أولا معنى فطرة بفتح قاوة فتح فا فطرة أي شقه معنى اشتقاق وشكاف اشتقاق ويا شكاف و جمعشم فطور يعني شقوق شكافها فطور فطرة یا صور فطورة و شواهدش در قران خیلی زیاده که من به سه تا اشاره میکنم اولا خداوند در قران میگه تکاد السماوات يتفطرنا من فوقهن آیه 1 سوره 5 آیه شورا آیه 5 آیه شورا آیه پنج سوره شورا, شورا تکاد السماوات يتفطرنا يتفطرنا ای تشققنا من فوقهن نگه آسمان ها آسمان ها دارن چی؟ شکاف فرمی دارن حالا از عظمت بحث آسمان ها و همشین فرمودی خدا من فرج الباس و حل ترام فطور آیا شقوقی آیا شکافی نگاه آسمان ها بکن آیا شکافی در این ها میبینی خلل نقصی عیبی درشون میبینی آیا عیبی ای در این آسمان ها هست به همین خدا من میگه ادسما اون فطرت مختی که آسمون ها منفطر شدن آیه انفتار یک آیه قبلی خب سه ملک بود ادسما اون فطرت ايه نشق و الهم که در بحث معجزات الهی گفته میشه که از این آیه استنباط میشه اینه که پدیده آسمون ها و زمین ها ده هنگام وجودشون با یک انفجاری بوده که اشتقاق ایجاد میشه و انفجار ایجاد میشه و خود به خود این آسمان ها و زمین ها به وجود میاد که خداوند داریم این آیه بهش اشاره میکنه. اینکه الان ما بحث ایجاد علمی قرآن رو نداریم اینجا، اینا فقط در معنای دوغوی داریم اشاره میکنیم. از احادیث هم داریم که رسول الله صلی الله علیه و وسلم بَس میشه. از نماز شبش که الیقوم الیقوم من اللیل حتا تتفطر قدمه، حتا تتفطر اي قدمش یعنی پاهاش شقشق یا شکاف شکاف برمیداشت از بس که می ایستادن پاهاش شکاف بر, داشت. بر پاهاش درش شیاری می افتاد از اون سنگینی جسمش که روی پاهاش فشار آورده برده اینم حدیث در بخاری و مسلمه پس معنای از اول اولیش که معنای اصلی کلمه فتره هست و در لغت عربی زیاد به کار بکبه برده میشه، فطره به معنای شقه، معنای شکاف. معنای دوبه به معنای ابتدا یا اختراع یا ابداع و یا خلق و ایجاد و نشعت. ابتدا، اختراع، اختراع، خلق، خلق، ایجاد و نشعت. سبهؤلاء جماعات قران زياده فرموده ای الله جل شانہ قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات فاطر السماوات فاطر السماوات اي خالق السماوات قل اغير الله اتخذ وليا اي من غير خدا رو بفرستم کسی که آتامون ها را آفرید کسی که آتامون هرا آفرید خدابن عباس در تفسیری من کلمه فطر نمیدونستم تو اینکه دو تا اعرابی دیدم که دعوا میکنن سر یک چه این میگه انا فترت ها این میگه انا فترت ها میگه من اونو رو کردم این میگه من ایجادش کردم این میگه من ایجادش کردم میگه از اونجا فهمیدم که معنای فترات معنای چیه؟ معنای ایجاد کردن و خلق کردن و درست کردن میاد فاطر است موات آیه انعام 14 آیه 14 سوری انعام و همچنان فرموذي الله جل شنه در سوره يهود آيه 5 و 1 إن أجري إلا على الذى فطرني إن أجري بدرستي كأجر من دست كسيس كفطرني أي خلقني كسي كمنو ايجاد کرد از هكذا ايجاد کرد ديكه بمعنى شكاف مياد خير بمعنى شكاف ديكه نمياد كسي كمنو على الذى فطرني أي الذي خلقني بمعنى خلق واضح سريحة فاي 51 سوره اسراء هم خداوند چی میفرمایند من یعيدنا قل الذي فطرکم اول مره قل للذی فطرکم اول مره ای خلقتکم اول مره کثیک شمرای ایجاد خبره بر اول آیه فاطر هم یکم داریم که خداوند میفرمایند الحمدلله فطر السماوات والارض الحمد السماوات والارض خالق السماوات والارض بدال الحديث النبوي دارين رسول الله صلى الله عليه وسلم يرميان وجهت وجهه للذي فطر السماوات والارض وجهت حديثا فهي مصح حديث ابي ابن ابي طالب وجهت وجهي للذي فطر السماوات خلق السماوات والارض ان معنى دوم فطر معني ثقوم معني ثقوم فطرى بمعنى قبولي قبولي قبول کردن و پذیرفتن خدا مند در قرآن چینی میفرمایند فرماین از سما و منفط رن به منفط رن به اشاره هست که خدا میکنه به اینکه که ها قبول کردن اون چیزی که مقتضای خلقشون بود رو خدا دستورات خدا را قبول از سما و منفط رن به با دستور خدا خلقشون و اون چیزی که ایجاب خلقشون میشد prophaziroftam manay paziroftam miyad ayah 17 muzammil ayah 18 surah muzammil dar lugat arabi ola akhire maana ke dar lugat arabi umade al-fitr al-fath wa kasre به چیزی گفته میشه که ابتداش خیلی نزدیک باشه یعنی چیزی که سریع به وجود بیاد مثلا شیری که تازه دوشیده میشه از گاف بهش میگن چی؟ فطر و مثلا در باقی 6 همین که با آرد ساخته میشه معمولا خودمونم داریم با واقعا به صرف میشه چینگال حیث در مدین زیاده سفره های سفره هایی که ما داشتیم دوشنبه و پنجشنبه این حیث همیشه هست و حیث مدینه معروفه یک روغنی و یک چذاب یا یک طعم شیرینی خاص خودش داره خصوصا با رطب و خرمای مدینه خب حالا لبتون آب نندازید انشالله رسید اونجا حتما دوشنبه سر سفره هفتینه سفره افطاری ان شاءالله بشینید دوشنبه و پنجشنبه تا ببینید این حیث اونها چه شکلی چنگال اونها رو خوش خوشمطری خوش چنگال خودمون خب میگن که حیثون فطیر حیثون فطیر یعنی حیث طری یعنی حیث این چنگالی هست جدید تازه که هر تازه از روی تابه آوردن برای خوردن که اون میچسبه دیگه فطیر یعنی میچسبه حیث فطیر حیثیس کی تازه و تازه پخته شده و تازه رو بردن برای خوردن حالا معانه دیگری هم داره که علما مثل راغب اسفحانی اشاره میکنن این کلا از کتاب لغت گرفتیم از معجم مقایس النغه و لسان العرب و همچنین معجم الفاظ قرآن راغب اسفحانی و دیگر علما معانه دیگری هم راغب اسفحانی و دیگر علما اشاره میکنن در کنار بعد از آیات قرآن که مثلا بالفرس eh kod fitrat ra ya futur ra be ma'nay islam ma'ni kardan masalan dar dar an nahay fi qarebul hadith agar bokunin masalan don bala in hadith fa in mitam lilaytika fa anta ala al fitra hadith dar bukhari o muslim fa in mitam lilaytika تو بار فطرہ در جمعہ کہین بر اسلام بہ معنی اسلام اومده لیکن این معنی چیه معنی اصطلاحی هست نہ معنی لغوی و همین بہ معنی سنت اومده در حدیث صحیح بخاری یا مسلم 50 من الفطرہ 50 من الفطر چیز از سننته پانچ چیز از سننته نہ از اسلام و نہ هم از معانی کہ داشتید خوب این معانی که انشاءالله بازم پیرامونی صحبت خواهیم کرد. نگاه بکنید. و وقتی که بحث میکنن بین فترت و معانی لغویش بحثم میکنن پیرامون ارتباط این معنای لغوی با عقل انسان. یعنی این فترت و قسمت دیگر عقل. مثل علام معلمی، تا دیگر ائمه مثلا اشاره‌ای میکنن خصوصا علامه دهقانی در کتاب در و تعرض العقل و النقل نگاهو کنید وقتی که بحث فطرت میشه فطرت یک چیز یقینی هست که در انسان نهفته است فطرت شما عوض نمیشه حالا چه فطرت ظاهری و چه فطرت قالبی تون و باطنی تون چیزی که ثابت هست در درون شما دیگه عوض نمی و همین این چیزی رو چشما تون مثلا به فرض، چیزی ثابت خدا گذاشته. دیگه اون چیز ثابته از اصغر ممکنات به فرض گوش ببینه. هر کاری بکنی گوش نمیتونه ببینه. و نمیتونه با چشمم بخورید. این چیزی که خداوند تقدیرتون کرده، خلقش خلقتون کرده بر اون اساس. در بحث استدلال یک چیزی یقینیات هست. که در علم الا در علم منطق بحث میشه یه چیزی هست که نیاتی که در درون انسان نهفته است و عقل انسان در مقابلش یه چیزی هست که قسمتی قسمتیش باید بدیهیات و ضروریات باشه و قسمتش زنیات و گمانیات باشه متاسفانه معتزله و همیه وقتی که بحث از عقل میکنن عقل از فطرت بالاتر بل از اونها هیچ اشکال نداره خدا به تعدد افراد زیاد بشه همین اعتقاد این که خدا ستاست لقد کفر الالذین قالوا ان الله صلیح و طلق که عقل عقل سلیم نمی پذیره لیکن این ها به عقل خودشون پذیرفتن نپذیرفتن چی چی سبب شده که به پذیرن ها فرسی ارسی و سقرات و فرس شیقه یک و ستا کردن یک و ستا کردن این مسئله که الان میخوان علمان به ششاره بکنن در بحث لغوی اینو میخوام بگن که فطرت انسان جزء دریات بدیهیات هست که عوض نمیشه اگر هم اگر هم تغییری درش ایجاد بشه تبدیل نمیشه یعنی فطرت انسان هیچ وقت معکوس نمیشه یعنی فطرتت باشه ایگانی و یگانگی و یکتایی خداوند بذلوبیت با تغییرات مثلا فهمون در مبله بحث که خواهد اومد در بحث فباوها یا بدان یا و نصران یا و مجسان این تغییراته نه تبدیلات فرق وایم بریم دو, دو تا مسئله چون تغییر وقتی گفته میشه تغییر جزئیه سرش که به سنگور دوباره به حالت اول خودش برمیگرده اما در بحث تبدیل نه یه چیزی هست تبدیل به یک ماده دیگری میشه چیزی که مدرسه صلاح شیمی هم داره یک ماده هر تبدیل به یک ماده دیگری میشه مثلا آهن با مثلا به فرض با حرارت خیلی زیاد تبدیل مثلا به تلاش بکنه خب هرچند که الان در بحث لغویش یک کم نزیکی هم هست بین تغییر و تبدیل که الان من این فروب را گفتم که به خاطر تقریر ذهنی شما علامه معلمی چنین می‌گوید در کتاب القائد ال التصحیح الى تصحيح العقائد القائده لتصحيح العقائد في ديوس السميغه اما الفتره فاريد بها ما يعم الهدايه الفطريه فالشعور الفطري والقضايا التي يسميها اهل النظر الضروريات البديهيات هي افكار وقتي كبحث بشيء هو هداية, هدايه فطري انسانه بعه از شكه مده بيرو مياد مير دون بالا شير ميگرده هدايه فطري ضرورياته بديهياته درست بعه داشكان بيرو مياد فوري لبشو ميداره رویتيني شروع بمكيده ميكنه يا جبيدان شروع مكيده ميكنه ان قدره من خداس ان هدايه من خدا من ضرورت بديهيات ميگه و نظر العقل به ما يتيسر للاميين ولا ونحوهم مما لم يعرف بالكلام وتؤخر الفلسفه ميگه بقى اما علم فطريه علم یک سنی هست بین تمییز عاقل و غیر عاقل ولی علم عقل یکی از فروق بین عقل و فطرته علم عقل علم یک ك... انسان‌ها درش مشترک نیستن انسان‌ها درش مشترک نیستن ما وقتی که از عقل در علم شرعی استفاده اش می‌کنی بهش می‌کنی منظورمون از اون من عقل عقلی که به معنی چون ما خود هست در لغت به دو معنی داریم یک به معنای عقل ملکی که عقلی که ملکه یه انسانه عقلی که ضرورت خص تشخیص انسانه این چه رنگه؟ سفید این چه رنگه نمیدونم فلانه این سفیده، اون مشکیه، اون قرمز عقلی نمیتونه بپذیره ای که این رنگی دیگر مگه اگه یک مشکل جنیسیکی داشته درسته؟ پس یک عهده یک عقل ضروریاتی داریم اون چیزی که در باطن انسان نهفته شده هست و قابل تغییر و تبدیل نیست نمیتونی شما قرمز و سبز بگیریت مگر با تغییر و یا با اینک گذاشتن درسته یک عقل دیگه داریم عقل مقتصبه با تجربه ثابت میشه خب الان با این دو تا فرق میتونید بفهمید که عقل اولی فطریه اما عقل دومی اقتصابیه خب عقل دومی اقتصابی قضایی که مثلا منطقی ها و فیلسف ها به ششاره میکنن حادث و محدث و قدیم و جدید و فلان و فلان اینا که صدا روش میکنن آیا اینها اقتصابی یا فطری؟ اقتصابیه با فکر کردن و نبیدونن فلان و فلان بی نتیجه رسیدن که انسان نیازی هم بهش نداره چون خداوند خداوند نمیخواد بین بندگانش تفریقی بده. میخواد وقتی که خطاب قرار میده پلی عبادی کده و کده. همیشه وقتی که بندگان خطاب قرار میده با یک سیغه خیلی ساده که همه درد بکنن اوها رو مخاطب قرار میده. ولی گفته ایفنیسیفان، ارسوه و تقرات و فلان خاصه همه اشخاصه همه اشخاص میتونن بدونن و تشخیص بدن یا فقط خاص ریاضدانان و نمیدونم اونهایی که به برفر زبردست شده در علم ریاضیات و فیزیک و نمیدونم منطقه و این ها شکی نیست که علم خاصه آیا دین خود و من دین خاص و تقسیصه دینی که خاص افراد خاصی بشه؟ خیر قرآن این فروغ من گفتم یعنی که شما بین دوافع فطری عقلی و دوافع عقلی اقتصابی تفریخ میرید فرق بذارید چون ما وقتی که تشخیص بدیم بین این دو تا مسئله دیگه خیلی ترجیحاً بین خیلی از مسائل برام راحت و آسوم میشه خب بعد از این مبحث میان به ادله ای که اهل سنت استدلال کردن بر وجود فطرت ادله از قرآن ادله از سنت و ادله از اخنت چه ادله ای امروز فقط بررسی میکنیم ادله ای که در قرآن اومده چه عادله ای هست و اینکه انسان مفتور فطرت داره چون متاسفانه حتی امروزه ما علمایی میبینیم که فطرت را اینکار میکنن حالا آیات که با تعویناتی ناگویند تعویل در یک تعویل و مجاز در که هر کسی که میخواد آیه را با عقل خودش نپذیری را برات از بکنه ازش استفاده میکنه حدیث کارو به بحانه بهانهای یا ابوهریره بدفهمیده یا ابوهریره مشکل داشته مثل ما حدیث حدیث قره و فلان یا توهمت به هست یا توهمت به حدیث صحیحه نه حالا ما میخوایم اومد ان به بحث حدیث ابوهریره لیک قبل از اون بیام ببینیم آیا در این آی در این آیات هم مجالی هست برای اینها که بخواین این را تعبیر بکنند نگاه بکنید دین خدا من یک مننت بزرگی است بر سر همه بندگان شما همین حدیثی که در انصار احباب امروز داشتید بحث آداب قضاء حاجت قبل از اون داشتین وقتی که وارد قضاء حوایج میشید بگید اللهم ان اعوذ بک من الخوف و الخبائث بیرون میاد بگید عفران نکنم میدونم سلمان اعتراض میشه چون این حدیث نداشتیم دیگه حالا در جاهای دیگه ما داریم سلمان اعتراض میشه یه یهودی اعتراض میکنه میگه که دین شما چطوره حتی آداب دستی هم بهتون یاد داده میگه بله حتی بهمون رسول یاد داده که رو به قبل قضا حاجت و نه هم بش به قبله دینین قد دقیقه که مسائل ریز مسائل نمیدونم قضا حاجت و دستی رفتن چشمش ادش نکرده چطوره که خیلی از مسائل مثل بحث فطرت انسان که انسان همه تمامی انسان ها بهش نیاز دارن این مسائل انسان ازش چشموشی بکنه و پیانبر نیاز به انسان, ب... به انسان ها یاد بده و شرحش بده که حالا مثلا بالفرد ما نیاز داشته باشیم که تأویلش بکنیم برخلاف معنایی که در احادیس اومده یعنی عقلمون، این عقلی که ما عقل نظری که ما داشتیم گفتیم یک تصابی با اون, اک... با اون نظریاتت، با اون عقلیاتت با اون چیزایی که میخوان مدل فرض اگر ما بگیم انسان مفسوره پس در نتیجه خدا همه میشه ظالم چون اونهایی که خدا رو نپذیرن پس کافر هستند درسته خب بر اساس این عقلیات این بدهیات و این عدم ظفت قواعد قضا و قدر مباحث توشید سبب میشه که چی این آیات رو تعویل بکنن و حالت رد بکنن الان این خیلی مبحث مهمیه که دین همه این مسائل مسائل رو کرده تمام مسائل رو شرح داده و و مشکافی کرده و جلوه بره مراجعون ده حالا ما میگم در این آیات آیات بعضی از آیات صریح و بعضی از آیات به طور غیر مستقیم میاد این بحث فطری انسان از آیات صریح فرمودید الله جل شأنو فاقم وجهك للدين حنیفه فاقم وجهك للدين حنیفه فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل الله فطره الله التي فاقم وجهك للدين حنیفه میگه حنیف خود خواست دین قرار بده فطرت الله التي فطر الناس عليها اون فطرتیکه خداوند تمامی مردگان رو اون گذاشته یعنی خاصه پیامبر نیست یک چیز دافع مشترک بین تمامی انسان ها نه پیامبر نه غیر پیامبر همشون یکین فطرت در صعر معنوی ذاتیه انسانی که چی ضروریه اکتسابی نیست و فرقی بین افراد نمی‌کنه بطرت الله التي فطر ن عليه هم چیزی که خودم در انسانها تمام میشه بوده لا تبدیل له خلق الله و این خلق تبدیل نمیشه عوض نمیشه نمیتونید با این چش میتون سفید آبی ببینید. یعنی این چش نمیده که ما عوضش بکنید مگر با گفتم با تیر های ژنتیکی یا بر ف با ننگذان اصل این چشم عوض نمیشه. این یکی از حیات تیحیه در اینکه ما باید ما باید دستورهای خدا را بپذیریم چون پذیرفتن دستورات خداوند با همین اقم وجه کلید دین یعنی خودت را مستقیم بر دین نگه دار بر اوامر الهی اون فطرتی که چیز که تاکید میکنه با نسبش فطرت الله اللتی اون فطرتی که با نسب تاکید اومده که لازمه تمامی مخلوقاته که باید باشه اني حطت اللغه العربيه بيني انه هو بلفتره الله شرح لهم ونسبه بلفتره الله التي فطر الناس ها شان كبوي مفصدم معروفه باش مياد خدابا انشنين با تاكيد مياد با صيغه النص مياد فتره الله التي فطر الناس من بعد بايره خاتمه ميده لا تبديل في الله دي خلقم شدني ان شدني هم ففتره هيت الا در ازله و آیات بعدی شاید سریح تر ما ببینیم از جمله مثلا ما آیات و احادیتی داریم یا آیاتی داریم در بحث میساق و عقد و تأخودی که خدا بند از بنی آدم گرفته چینین داریم؟ حالا اون آیه قبل آیه سی روم بود سوره روم سی آیه الان آیه 172 و 173 سوره عراف 172 و 173 عراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألسنتكم ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كن عن هذا غافلين ويتخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وقتي خدابن فزدنا من همش شرحه مبدا که خداوند فرزندا رو بیرو به اهل جهنمو بهشم مشخص میکنه و همه اینها اقامت حوجت روشو میکنه که کی من کی هستم اقرار میکنن که تو پروردگار ما هستی پس این چیزی که در اصل باطن انسان و اقرار اقرارو خداوند در روزی که آدم رو خلقت کرد از انسان ها گرفته چیزی هست که در باطن انسان نهفته هست حالا انکار هم بکنه چیزی که هست نمیشه عوضش کرد همین در آیات دیگه داریم میگه خداوند آیه 7 مائده وعده کر و نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واشقتکم به ام بیثاق ان احتی که خداوند داشت شما گرفته چه عهدی اسم اگر مجهولی که طول میکنه به ما عم میکنه وعد کر نعمت الله میگه صدا یاد بیارید اون بس شما میدیدید که نه ما میثاقی چه تعهدی از ما گرفتید معلوم یا مجهور باید معلوم باشه که خدا من ام بکنه و ما انجامش بدیم. اگر نمیشه چیه تکلیف مالایتاق تکلیفی که ما ادان نداریم. پس خدا من اینجا تذکر میده و میگه که یاد بیارید اون نعمتی که بهتون دادم و اون عهدی که از اونو گرفتن یاد قلتون سمیهنه و اقعانه وقتی گفتید که ما میشنمی و میفردیریم. يا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مني. ألم أعهد هذا التعهد ما يا بني آدم كطبعًا بيخاصه أشخاص خاصه يا همه هم مشترك هم الشيطان مش نفسه همون خلافه مش نفسه خلاف ميدن الاب محذفه لا بكرهه ان يطلع على اخره غنه هو خدامه بييدوا سيجار كشيدن ومشروب خردن وزنا كردن وينه هم ميدن. سوره حدید آیه 8 ومالکم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوکم لتومنوا به وتؤمنوا لتومنوا برببکم وقد اخذ ميثاقکم ان کنتم مؤمنین وقد اخذ ميثاقکم ميثاق وعهد مژته گرفت قبل از اینکه شما خلقت بشید حضرت میثاق گرفته عهد و تعهد گرفته این میثاق حالا آیاتی که اومده خیلی زیاده حالا در جاهای میاد علوا گفتید اول داشتیم صراحت بحث فطرتیم دو داشتیم بحث میثاق و عهد سه داریم بحث تذکر مثلا به من به شما میگم میگم مواظب دستت باش که این چاهی مثلا به این چای دستتو میسوزونه درسته چه موقع شما میدونید که این چای هست و داغ دستو میسوزونه میسوزونه که قبلا امتحانشو کرده باشید تذکر بهتون میدم اگر نکه تذکر نیم. چون سوزانه رو نمیدونی دسته چیه. یعنی موازد باش دسته نتذانی. سوزانه چیه؟ نمیدونی اصلا. نمیتونی بپذیریم چون نمیدونی چیه. مجرد نهی بدون دلیل. درسته؟ بدون تجربه بدون احساس. نمیتونیم بپذیریم. خب وقتی که خدومن تذکر میده در قرآن از دهان رسول الله صلی الله علیه وسلم یا اینکه ما میتونیم تشخی اگر نمیتونیم تشخیص بدیم که خودمان ضب در حق اما کرده که این خودمان از اون دوره و خودمان با کمان از ارده پس حتما ما میتونیم و میدونیم که چیه اون چیزی که تذکر بهمون میده بخاطر همین خودمان در قرآن چی میگه؟ میگه که در سوری غاشیه مثلا و یه یک فذکر فذکر انما انت مذکر لست علیهم به من سایت فذکر تذکر تذکر بده تذکر چه باقی داده میشه؟ گفتیم یه چیز معلوم باشه تا تذکر داده بشه حالا این تذکرات،, تذکرات تذکرات زیاده در قرآن مثلا خود در قرآن فما لهم عن تذکرت اسم قرآن از قرآن یاد میکنیم با امان تذکرت معرضی سبحان الله دیروز بسن توی مغازه یه چیزی بخرم بعد اون صاحب مغازه داشت سهران کتاب سهران رو درست میخون بعد گفتم بهش کتاب داره ما شایلا مطالعه می کنی گفت آره تفسیر رو خوندم همی که تفسیر رو می خونی آدم میکرد نمیتونه غیر مومن باشه باید مومن پای برد بشه یعنی میگه قرآن حالا خودش میگه تفسیر قرآن می خونیم انسان عمض میشه یک خیال گذاشتم میخوایی نمیخواد آدم بشه خدا که در قرآن تذکر میده میدونه که این کلام حقه و میدونه که چی خودمون چیزی دیگه ازش میخواد می که تسبیخ سخته میگه شخص عامی یک مغازه‌دار دیپلم هم نداره سیکلی بیشتر هم نیست یعنی یک شخص عامی میتونه تشخیص بده این تذکره این تذکرات خدا فقط تذکر بیداره. جهنمی هست عقابی هست این کارو نکن اون کار فنانه درسته همه تذکرات قران یه چیزی که بدیهیاته یه چیزی که ضروریاته که تو نفس انسان, هم انسان هم احساسش هم میکنه میدونه که یک دستی پشت در سا هست میدونه که یه چیزی هایی نفته شده هست فرشتگانی هست جنی هست یا خدا با در قرآن مثلا این آیای مددسر 49 داشت 54 در همه سلوی مددسر داری کلا انهو تذکره کلا انهو تذکره قرآن تذکره هست حالا وجوه این فترتی بودن انسان زیاده نسخه ای بود چارتوی چارم این مبحثی که خداوند در قرآن اشاره میکنه چینی نه مثلا به فرض بحث به طرف خدا اومدن در حالت ضروریات وقتی که یک ضرورتی پیش میاد وقتی که یک طوفانی پیش میاد مثل سوره یونس آیه 22 هو الذی یسیرکم فی البر و البحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بهم بریحاً طیبه فَرِحُوا بِهَا في وقت سوارك الشيش و دان و بعد خوشيومات باد جاءها جاءتها غيح عظم بدأ ذنب بادت في الموج من كل مكان و ظنوا أنهم أحيط بهم دعو الله مخلصين له الدين خب إن شوكين هارو بطرف قدام له مشرکن سوار کشی شدن بعد خوشی میاد باید باید توفانی میاد دست به طرف خدا بالا میبرن وقتی که موجهارا میبینن و ظنو انهو انهو محیط بهم الله مخلصی خالصانات خدا میخوان له الدین لئین انجیتن من هادهی لنکونن من الشاکنی اگر مرا نجات بدی شاکر بشیم قسی اکرمه که اصلش در بخاری و مسلمه یک از الالت <سؤال> و اکرمه فردان در بوجه میگه که من سوار کشتی شدم یک طوفان ما رو گرفت بیگه مشرک ها مشرک ها لاجه ها به چیچی سبب شد که مسلمان بشه یا اینکه فکرت رو قبول داشته باشه میگه که قبول نداشته باشه میگه وقتی که طوفان اومد طوفان اومد میگه که در درون خودم نگاه کردم حرف محمد حقه گفتم ای خدا خودت برحقی وقت غیر از تو کسی دیگر نیست. اگر نجاتی آفتم میرم پیش محمد صلی الله علیه وسلم و اسلام اما ابراز میکنم و اعلام میکنم. خب میشه الله اینجا فترت رو انکار کرد؟ با این وجوه خبی با این معانی خبی از لغت عربی از مباحث علوم قرآنی آیا میشه تمامی این تفاصیل از علماء و این احادث سریح رو ردش کرد؟ این حث یاده ال این آيات هم هم چ وای مثل کو في البحره من تترون عایه کسی دیگه غرت خدا نیز که دست بهش بلند بکنید حالا اونم در صورتی که چی فترت ها من نشده باشه آ آخرین آیش از تو بود الان فطر ها اول شدهن مثلبلفر آدم سوار قایق خداره غرق میشه هی من سوار قایق بودم میرفیم به بنده خیلی موج بود چند تا پیرزن نشستسی میزن بعد شروع کردن گفتن یا الله، یا الله نیست که نه الله هم به درد نمی اینجا گفت یا امام رضا، یا امام هشتم یا امام مرتضا، یا امام فلان این شرک ها کی اولش کرده؟ آیا واقعا؟ نگاه بخونی اولین چیزی که در دلش اومد اولین چیز اولین که موج اومد گفت یا الله بعد بیادش اومد که ها نه نه چیزهای دیگه هم هست که بهش گفتن که امام رضا قدرت داره و نجات بده و فلان و خود یعنی الان اینا میگن ما اماما را واسطه قرار دادیم اماما نمیشناسن اماما نمیدونن فلانن در صورتی که اینجا طوری بهشون یاد دادن اگر در این های قرار بگیرن چی والله اینجا مشرکی میگن والله وانت تدعنا الا اما اینا نه دیگه مشرکین غیر از خدا دیگه نمیشناسن اینا نه غیرت امامو کسی دیگه رو نه حتی خدا رو نمیشناسن خیلی مسائل مسائل ریزی هست که ما میگیم لمس میکنید در بحث فطرت و اولشدن فطرت‌ها انشالله درست آینده مون مثاله میدونم که خیلی تنکین روی خودم تنگیری هم میکنه از یک قسمتی هرچنک بحث های پیرامون این بحثه بشه شده لیکه خدمت آنچنانی نشده میمونه تخریج حدیث کل مولود نیون در علفت را و درست آینده مون ود مشکافی موشیف کردن انشالله این حدیث که میزونیم برای درس آینده سبحانه کنم بحمده سبحانه کنم بحمده سبحانه